اعوذ بالله شیطان الشيطان بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب الله الله و ال ال و و وحث رسید به مسئله در تحریف قیبت در کلمات شیخ روایتی رو که از مرحوم یهیل از رق نمی کرده بود به این مناسبت به اندازه مختصری چون مراد ما نه فقط شرحاله ایشان ایشان مهم هم هست قده از روایت داره در در آسان خواهیش رو دوز نباشه حیل از شرحاله ایشان یکیفیت کار رجالی و آشناتدن شما با مواهد رجالی همچون که اصحابه ما اینجور نویشتن که ما یک یحید عذرق داریم یک یحید نه حسان عذرق داریم پدرش پدرین شرح حسان باشه و یک یحید نه عبدالبخمان عذرق خب آیان اونده ای که یحید عذرق باشه مردد بین اون دو نفر میگیرن که اون یحیب نهد رحمان رو نجاشی به شیخ نجاشی توسیخ کرده اون مشکل نهد یحیب نهستان ازور توسیخ نشد که مردم شیخ توسید در شیخ صدوق مرحوم مرحوم شیخ در مشیخه تریدش به ایشان نوشته مثلا یحیب نهستان از یا مقتمد هم که اگر صدوق بنیسه علامت توصیف خب یه ازدهی به این ذهن موزن که ایفران توصیف کده از هر رو سره است یه ازدهی مثل آرخویی میپنی یحیب نهبدالرحمن سره است اما یحیب نهحسان رساقتش ثابت نیست این اگر این سره شد چه خوب خیلی بود اگر نشد مشترک بشه ازدهی هم در این خیلق افتادن که مثلا شاید مثلا غلط یحی چون در عباس صدوق اومده شاید اون عبدالرحمن بوده تسخیر شده به حسان پس اون عبدالرحش افتاده باشه رحمانش حسان شده بس. عبدالرحمن اصلا ما رو پس این هم یک نقطی دیگه ادهی هم مثل مرگومه آیه آموز تری کردن بگم بله ما در روایاتمون یه یه دا حضرح داریم صدوق در مشیخه خودش استظهار کرده یحیی نه حسانه کلینی و شیخ توسی استظهار کردن یحیی نه انجا کنیده دو جور استظهار راجع به این مطالبی که تا اینجا الان من نقل کردن در کلمات آیان یکی بطا نقطه لطیف هست اون رو از داشتن اولا این نه یکی باشن بسا نفس کنیم اون حسان تحریف باشه تصیف باشه یا بعضی احتمال یه یه نحسان حسان جدش باشه یا عبدالعامان جدش باشه یکی جدش باشه این خب احتمالاته بس در حد احتمال اصولا من همیشه عرض کردم بعضی از این نوشتار که من نگاه میکنم مثل که مثلا فرد شد مثلا سی تا احتمال تو ذهنش کنه همه رو میریز این ها احتمال هست برای بحث خوب برای تعمل شخص خوب اتا نباید چون درس هم گفته بشون ما هم گفتیم بخاطر این که آشنا بشین به که به بحث به احتمال احتمال کار نمی‌کنه کنه احتمالی چی ما توضیح دادیم احتمالات ها و تقییمش در حد تصوره و این باید تصمیق باشه از این هم علم نیسته یهتمر یهتمر چه پایده داریش پایده هم دار. اما این که یکی باشن یکیش اشتباه باشه این خب صاحبا خلاف ظاهره اون نقصی اصلی اینست که مثل مرحوم قاموس اون نقطه ایش مخام عبارت شیخ صدوق رو درمتی بیم مناسیشون تشریف داده یحیل از ورمون ابن حسان. اما نجایشی باشه این رفتن ابن عبدالرحمن این اینه کمی روش صحبت بکنیم رو حرف بزنیم و ببینیم که آیا قابل قبول هست یا نه ارز کنم که ما افتاد... این اولیه توضیح میدم بعد داریم توضیحاته کنیم اولا ما شدارن و مرارن ارز کردیم وقتی اینجایی ما در وجهات مشکل داریم تا دا یه مشکل نداشته باشیم باید اول ببینیم چی داریم و بعد چی میخواییم هست در کتب در مسادر اهل سنت ما دو چیز داریم در مبایستش یکی روایات کتب روایات از اون سعی بخاری مسلم دیگر به حقیق معجم کبیر معجم ترانی سرگیر او سر یکی روایات یکی هم کتب رجاله اونجا دو محور داریم در اهل سنت دو محور و توضیح دادیم که در مسادر ما مسادری که الان مشکل اشکال بکنیم ما سه محور داریم ما با حفظ سنده سرمون ما سه محور داریم یکی محور روایات مثل کافی تندیر استفسار برای عمالی یکی هم محور کتب رجال که از کردیم محور کتب رجاله که الان ما داریم حالا بوده از دست رفتیم یکی الان فعلا داریم یه مختصر از رجال علم فضال قصر که در رجال کشی آن یه مختصرات از ایده ای از مشایخ قرارسان که اینها رجال داشتن مثل ابو القاسم برخی و مثل جلویره نحمد فاریابی اینها من هم آن دوانه هسته تو رجال برگی هست مثل خود عیاشی معرفت و این هم تو رجال برگی هست کشی هست یکی هم خود رجال کشی این مجموعه ای است به اصطلاح یک مقدارش و آن را به مال دیگران بوده که در ضمن این کتاب الان موجوده این روشه حالا از این, این کشف و به معنا کتاب رجال برگی هم داریم و یکی از ایشان کتاب رجال شیخ طوسی هم این مجموعه یه رجالیست که ما الان داریم از قدمه حالا ای که راسه یه رجال نزاوی نازقنه هفته و هشتون اونا رو پیدا نوازه بخش نمیشیم ما الان قبل رو عرض میکنیم پس یه مجموعه یکی در رجال کشید خود رجال کشید و رجال برقید و رجال شکل توسید این مجموعه یکی ما در رجال داریم از ما مجموعه های سنگین داشتیم مثل جاله ابن قابضه که به دست ما نرسیده یا یه مصدرکی ابن نوح نوشتی و استاد نجاشی برای جاله ابن که اونم دست ما نرسید محور ثبوتی که ما داریم محور فهارسه که اهل سنت نداره ما یه ای داریم که فهارس اصحاب اهل سنت این که حبیث فهرستی که الان در اختیار ما موجوده حرف به ما رسیده فهرست شهر توسیز هم فهرست نجاشی تا حدی هم فهرست در غالب زراری یه اجازه ایشون به نوش داده در آخرش لیست کتابهایی که پیششه امورده به اجازاتی که داره این فهرست در غالب البته خود فهرست و نجاشی امدار زیادش مؤیل مثلا فرست ابن بسته بوده فرست همهی بوده فرست ابن بوده فرست ابن بوده. بوده اما اونی که الان درست ماست مرحوم شیخ و مرحوم نجاشی. پس ما تقریبا سه تا کتاب در هم فرست داریم سه دو سه کتاب هم در رجال داریم که مسابه ما محبوده برها روایات ما شاید بیشتر باشه و توضیح دیدیم که این مقدار از فحادث و رف... کتاب رشاد ما خیلی وافی دروایی ها تحلیفت نیست این توضیح ها پیشن این بزرشتی این راجبی و یک نقطه خیلی در اینجا مهمه از چه در احل سنت و چه در ما و چه در حسولا اونی که اول وجود داشت کتب روایات بود رجال رو از او استخراج شده. اصلا رجال از روایات گرفته شده هر را که سنتون رجال زیاد دارن مثلا دیگه از قرمه هایی مثل 250 و 60 و 70 و 80 و 90 و 300 و 600 دیگه دیگه نداشتن خیلی از کتب روایات بیر. خیلی تو ماسه بودن دیگه مثلا خود بخاری با ادهی از مشایرش و بود که از حدیث حفظ کرد دیگه احتیاج نداشه از کتب و از روایات نگاه بکنه پس رجال از روایات گرفته شد اما فهارز از روایات گرفته نشده فهارزی که پیش ما هست فهارز از فهارز دیگه گرفته شده نه از روایات هنم اصلاً فرضیم مثلا وقتی از یه شخص دیگر کنار این سکونی داره کتابیش جانو این رو را توسعه گفته علی برای ما نه برای همین جانو فری هم هم سکونی. چون اسم جانو فری پس تکاب داره. عرضی شون کتاب داره. از چون اسم جانو فری اول آناتو رجال میشن جانو فری سکونی و یاری آنها رو این لورس میخواد کار خوبی در رجال آمدن اسم نوفلی به نوشتن اما توی خیمه اسم همونه بینیم خوب درکت میکنم چون خیمه اسم روایت نیز من صاحب کتاب بودنه مجردی یعنی علی ابن راوی من عبی هنه نوفلی هنس سکونی این معنیش این سه صاحب کتاب بوده یا رای نواشون نه، اینا راوی هست فرصون صاحب کتابه اما نوفلی اونم چون سال چون شد اجازه آمده نه این که از یعنی این درسته پس فنابراین به قبل ما در فحارس خودمون از دار خودمون نمیتونیم مشکلات رجادی در روایات ترس حل بکنیم در روایات سندها چون فهرس ما از خواب کتبه. حل نمیشه ده. این نکته که من الان هستم حالا یک کمی تطریق رو ما نهنفیه بدیم یک نکته که آرخوی کرارت دارن مثلا ما یک یهی های ازرح بود یک داریم اونه اسمش دو یک کتاب شهارس ما نگم یهی ابن عب... حسان کتاب نیست اسمش در پهارس نگم اما اون یهی ابن عبدالرحمن عب... اسمش دو پهارس آمده با هم فرست نجاشی آمده هم فرست چه میتلسی دقیقی همی یعنی آن خوبی میفرمایی چون نجاشی ایشون رو سار کتاب میوشته پس یحیل ازره منصره بس توی ابن... یحیل نبدالرحمن چون یحیل نبدالرحمن که صاحب کتاب مشهوره پس یحیل ازره یعنی یحیل نبدالرحمنه در سره این یک مطلب ما این از حوضیش ارمان بردادم روشن شد این مطلب روشن نیستی نفسه حرص کردیم اینی که مثلا فرصای یحیل اقرب اسمی یک کسی دقیقی همونید یا یحیل ای یا روایت این حلیل اینی که اسمی یا زراره ایلا مشروع روایت این زراره این زراره اسفدارش بردنشد و ها که دار در روایات ما مثلا تاریخی میگن یاسق پدر عمار اما عبوزر اسم پدرش نمیدارن داره وقت میکنی ما اونجا توضیح دادیم اگه کسی قصد اه... نفی یحیل از رب در ما به مجرد این که ندرشی اسمشو بیمیسته بگیم پس یحیل از رحمان مشهور است و لغز و اون منصره این نمیشه خواهشون چیزی نمیشه مخواهش چرا چونی که کار نجاشی بیان صاحب کتابه نه بیان مشهور و مشهور اونجه که موجب به انتراف میشه این هست که از کسات استعمال جوری لرز قادر قرار بگیره که وقتی این لرز تنها هم بیاد انتراف به اونه انسان بکنه انسان کتاب ساکتا باشه مخواد نباشه اون رفتی بون نداره ساکتا بیار چی نداره و صاحب کتاب بودن مشهور نمیکنه همین عمر بن انزله لا ماشاءالله مشهوره کتاب نداره علی بن انزله برادر ایشون خیلی مشهور نیست شده تا چند تا شاعر اما ایشون صاحب کتاب نویسنده علی بن انزله حالا اگه در روایات شما علید بن انزله قطعاً ابن انزله منتسب به عمر نه چون مشهوره به اینکه از علی... اون چرا؟ چون نقطه خمین رو بودن اون علت شد در یا اول از اول, اول معروف در اون نقطه علتش شد چون نجابشی نیست نجابشی کتابش از کتاب عمالی رو پیش نه افرد ناظر نیست بعد که نوشته کتاب عمالی رو دلوقتي <تصفحارس> دلوقتي باید تو درویش شریفه ایشون، از اهل شورا و اموال هر دو بعد از سرجه، این کتاب جروش گذشته و دوره اون احسانی استقرار کرده، زار تو این پروژه کرده آیا این تو خوبی نشون نه. اصلا فایده نداره. لا و علیه ناظر دروایات نیستند. اگر ناظر دروایات نیستند، نمیشونن شهرت به این و ایجاد این صلافی که در روایت هست درسوه کنیم اون شهرت عرض چرا کنیم به طور کلی من ارز می کنیم به طور کلی دو قسم می شه قسم مطلق مطلق مطلق اصلا زراره شما تو فهم باشه تو اصول باشه تو احواهز باشه تو اخلاق باشه تا گفتن زراره زنیتون بیایم زراره نعیم می آن زراره اوفا مثلا زنیتون نمی آن زراره دیگه زنیتون نمی یا در زمان ما هم میگید آهای خویی آهای خویی مراده نیست هر آهایی که شعر خویی بازشه. یه شخص محیل مراده یا میتونن آهای گلپایگانی مراده شخص محیل زهر و آی بزرگ باری آلن باشید گلپایگان این بر اثر انصرافیست و شهرتیست که پیدا میشه و گاه یه اینا محدودیت دارن به تونه طبیعی این طوره اصلا هران شما در خلصتر ببینید شیخ مر تو اصولی این شهر مرا جرأت سریه، تو فرهنگی این شهر مرا جرأت ازیو. که امی شیخ یکیه، اما تو هر فردی و بالا شیخ تا گردن، انحرافات خاص تو کنید داره. این مال همون فردیه. مثلا اگر شما در کوکی دیگه علیون آن علی، این علی نه علی بنعلویه. این انجامیه که هر جمعت علیون آن علیه نه علی بنعلویه. این مال خلیجیه. تو شجع داری بنعلویه نه. و از اون مستقيم نه میکنه اگر عمر علی بن عبیق یعنی علی بن الروای مدنی ما مثلا زیاد داریم علی بن علی بخشی این علی بن علی حمزه بصائمی پس یکی مطلق میشه مثل زراعه یکی معین میشه روشن شد تغلیظا چند نوع دیگه میخوام بگم بحث اینه علی اصلا بحث می کنه راجبه تمییز مشترکات و اشباحات اساسه من کلی موجز میخوام بگم که بحث این بوده راه میدادیم به مقدار موجود متعرض نیشن پس فرما معلوم شد که اگر ما با یک مشکلی در اسما برخور کردیم در کتاب اهل سنن چون کتاب رجالشون از روایات در سجده به کتاب رجال مراجعه میکنه. ما هم به کتاب رجال خوب مراجعه از ما مسادر جمعه خیلی کمه فوق آزه و فنیاتیشان هم کم حالا البته خودشان که مصیبت یکی <سست> این مثلا در کتب احادیث اون از همو کتب قدیمیشون روا عن فلان, فلان و فلان و فلان و فلان روا عن فلان و فلان یعنی با این راوی و ممکن است شما یک ابهام پیدا کنه حل بشه رواوی مروشی این حل بشه کیه تفهیم <تصحق> کنید ما متأسفانه در کتب معروف در خودمون خیلی کم راوی و مروی داریم خیلی کم <تصحق> کار <آلا> درستن ما به جنیرانی و مدید در به علمه این از بزرکت به حدیث متعارب اینرژال استاندارد اینرژال علمی نیست این که به خصوص مثلا یک امام یک شرط این علمی نیست اما این توی ما افتاده ایجا افتاده توی ماه ها تویشی ایجا از مثلا اصحاب و اصحاب و کازن اصحاب رضا این اما این که رواهنم و خدا حالا غیر از اماموزه هست که سیگه هم نهارت نه نداریم ما پس ما هم مسادر رجالیمون خب بدون اول چیه مشکل ما کجاست البته از تردم ما بعد از اخباری ها یعنی ما در تیه تاریخیمون ما این مشکل رو در قبل داشتیم مرحوم علامه رجال رو نوشتم خلاصه رو یک کمی سعی کردن کلمات مرحومه یعنی بحثی رجالی رو جمع جور بکن جمع هم کردن نوشتن کتاب کبیر هم داریم بحث بحثی بحث که دار ایشان مخواستن به یا نوشتن به ما نرسید این کتاب کبیر ایشان به ما نرسید این کتاب خلاصه ای که به ما رسیده خب خیلی خلاصه خیلی کن خب یک و این منشع شد که مخصان ایشون مفتح کرد که حدیث و بلحاظ سند روایت رو منشه شده که دیمی سال توی حوزه های ما خیلی اوضاع احادیث و هم بخار حدیث شیعه چون خیلی احادیث در کتاب کافی غیر کافی بود این به هم ریخی یه خیلی محیار های علامه به همین. البته در کتاب کافی با جلالت شنش بالای پنجاه در سالش هم ریخ در همی مراعات اقود مجلسی که به عنوان احادیث کافی رو ارزیابی کرده البته بازنی شما شعر مشهور چیزی مثلا شونزه هزار هم سر صد تحریف به دیگر در کافی زیر یک از از تا از تا زیر 10 از 17 از 17 شیست هم خورده ما تو زهن و سر شونزه نه هزار تا شونزه هزار خورده نشه در یکه بالای پنجاد هست اینکه مال کافی کافیش سر این خب چشمن مشکل کجاست؟ چه مشکلی درسه؟ درس اخباری حمله کنه. حمله از طرف اخباری شروع شد کی راه درست؟ مثلا باطلچین راه پیشش چه رجال پیشش چه راهی و مروی پیشش. خب اصل مطلب این بود چه؟ و درستم بود. اصحاب ما از این راه نرفتن. الله تبارک و تعالی هشتم خفغن هشتم دیگه. تمام میراث های ما قبل از الله نمیشه شد. تمام چیزا کمی ما داریم در میراستان مثلا فرسان شاگرد شاگرد علامه که شهید اول باشه تو ذکر آقای بیگه مثلا پی کتاب بزنطی که فکرگی ها نبرو خیلی محدود داریم چیزایی که بعد از علامه اضافه شده از مسادر قدیم که در خیلی کم داریم خیلی خیلی کم خب یک معیاری بیاد که بیاد مثلا فرسان حد خیلی سر سر دو ما رو جواب باشیم هر 80% خب سنگیم خیلی سنگیمه اون کافی هست و تهدیب و اسپسار هست و فقیه هست و بزرگان هست و اجلا هست و فتوات چند و قرم فتوات بوده به لبه میگن آقایی رو هست این مقنانی در قابل تر نیست خوب درن که لشیه رو مخواهیم براتون تکثیر اون حالت رو کنن لیتا اقوالی ها هم که این این عیم بریدیم دور این به و راست هم بوده این اشکال ها وارد 150 سال مثل ساکی اشکالات گذشت هسته از اصولی مثل مرموم اولش مثل مرموم این بهوانی، و این رژیالی مثل مرموم عدبی. اینا یواشه راه دیگه شخص بهبانی و بعدم علمای دیگری بی که با من خاطره اونها با مرموم آجی نوری حساب کرد شیخیایان هم به حوض‌های کاری دستور دادن که درصد زیاد از این مجاری اون 80 درصد یک راهی اصلاح بگه و این هم هیچ شد دیگه بین مثلا از اون 80 درصد دیگه واسه شراب بود لاعقل ارا مثلا فرض کنید نزدیک 50 درصدش عوض شه که تنجاه یه مهم بود یعنی از 20 درصد رفت به درصد مثلا این نشات بالا پایین بود اون حوزه کار مثلا, مثلا, مثلا ارکان فرض کنید یعنی آهن حسونه از رو ندادیش گفتن شیخ صدوق درمشیخ قریب دارد درسته توصیل کردن این رواه این صاغر که آنن ترمین کردن می گفتن باطله این رواه دیگه این نحسان هزورت توی کتاب شیخ صدوق هست این رواه دیگه می باطله روی این مردی جلید شد این هر دیگه آمد توصیقات کمرزیاد علی ابن امرانیم و باید توصیقاته مزار مشکلی و بعد این توسقات مشرف سداسه و بر اصحابه اجماع اصحابه اجماع آمده هی راه های و فراوانی رو سعی کردن و یه باش باش شاید که من میدونم الگه هم خیلی خاملی من در کتب روش خیلی درگی نیست اون تیچه لفتا بیشه که من میدونم اولی محمد مرموم محمد آمیز صاحب اینا این بحث رجالی ما رو هم گشتن اطلاز جدیدی اضافه کردن از اون مرزایی که اللهم دیگران داشتن هم علمیترش کردن ما برای همولین بار در کتاب خودمون همی جامع رواتی که روان فران و روان و فران ما قبلشون این سال هزار دیگه سخورده سونیا سال سال هزار رو بسنیم شد که این ما و لذا هم ادهی در این اعتقاد بودنی که ما بیاییم حدیث شیعه رو با هم جمع شیعی معنا نریم اون قالب هایی که قبلا هم بود اون با مشکل داره برخورد میکنه اون قالب های قبلی قالب های سونی رو از در میکنه داریم این شما این که رواهن فران و رواهن فران مثلا سال سیزه چار فرد بین سونی ها بود بین ما چه توی همین جامعه رو با تو معموم عدویلی حدستان داخل سر اندواته حسن اسم معموم محقق بودیم هم چون نقش داشت اصافه اما تقریبا خیلی حووز کن درست نگرد کرد بیشتر میشه با که زد زده افکار یعنی افکار را انداخت اما اینکه حووز کن بیشتر از زمان رهی دهبانی به برده تقرد کردیم و مثلا آیا خیلی امده؟ آیا خیلی امده؟ حالا راویو مربی امده. این یه، یعنی از بعد زمان اعلیی. حالا بعدشون باز دارن، بعدشون اشمال دارن، بعدشون تفسیر دارن. هنوز مختلف دارن. نمیخوام بعدشون بحث زیری بیشتر. میخوام اون زمینه کلی کار و انصافش اینه که این راوی رو که هم اخباریات احترافه و هم اصولیات این ما تکامل پیدا بکنه انصافش اینه. چون ما از یک طرف اون بحث سند و اتصال سند و انقصار سند و امهام در سند و اسم مشترک بودن واضح ندودن خب اینا ها مساله به امینیست ایه که هر بار ما نمیتونیم الان در مقابل دنیای اهلی سنت های خودم رو پخش بکنیم در صورتی که این اقل استانداردهای امینی رو ندارم نمیتونیم به کنار بزنیم بخواییم چشمگوشونو به نمیشه یکی از آن دوستان نرمو کرده دکتر نفرانسیشنگو داشته ها مدینه این هم بیا اون از دار استفاده من اون وحاوی ها سو این کتاب جواهر این تحرموه ها کتاب این شما کرده این تحرمیست او به شیاطا ایست رازی کن اگر هستم نگه جواهر مجموعه با این شکل و با این حج بوسه پیدا کردن هیچ تناسبی شن صحیفه نیست از یک طرف ما بخوایم این حرفا رو قبول نکنیم این اصول قرآتی و فلان و لذت‌ها و ارتباط همه این حرفا رو پشتفا بزنیم یا ما از این کیم راحت را را را را را بود اسم جلال و اعلی و اسماء یعن رب رحمان هر چی بود هیچ‌چی رو قبول نکنیم این در مغزه علم نمی‌رن در حال ما میراث‌های ما پخش میشه اگر صادقانه در دنیای سونی ها بود، اما در سطح بیرونی فرش میشه. اینها با داره نکات علمی مشکل میشه، انکار دو کم. اینجوری انکار نیست، مشکل انکار. بله بیاییم مثلا بگیم این قسمت ها رو یک حسایت مذهب یا خصوصیت مذهب داره، ریشیگاری طرفی داره. این میشه میشگویم. اما اسمها رو کل و تراقب به هم خورده و بی سند و بی حساب با. این از کردن این کتاب دائمون اسلام نعمان این جوریه من نگاه میشه انتونی رساله ایزارش حتی از معاصر خودش کسی که معاصرشه مثل هم هست اجازه حدیثی نگه میشه هم جور رفتی نصر خیلی تساهله فوق العاده تساهل این نمیشه قبول کرد این که ما چشمون رو که الان اده هم سه همیشون تقصیلیم ما با کاری همه هر باشه این روز در کشور مشروب از اصل عمل مشروب دل مشروب داغوی این روز داغوی این کاسه گونی این دوست فش بکنید آن از هم که اول کارش از این ها وارد نمیشن که این جواب نمیده این مثل انسانی که در تاریخیال سرش به دیوار این این میاد ای که دو دیوار نهایت برگرده ما این که به دیوار این که ای دیوار بچینه رسونه این کارو به دیوار این راه رو که نمیشه رو. اما میشه گفت که خصائص اصحاب ما حساسی نرسای ما تاریخ اونها رو پیدا کنیم. بعد الان یه چند بشریس تمام تمامیم ما امروز خودمون دونه بشریسی و کیش رستایی شده خیلی راحت میتونیم زمینها رو پیدا میکنیم مشکل نداره. اصلا دنیا اینطور تاریک راه بری دیوار بخوره. اگر میشین با هم روشن بکنیم در راه بری، عمر رو تحسیب پس بنابراین از کردم این مجموعه کاری که در دنیای شیعه شده انصافم مجموعه کاری که اخواری کرده، کردم مرمون بحیل بهبانی کرده ما دو همه بازسازی بشه دو همه تعریف بشه باستعریف بشه کار روش بشه و سعی بشه ضعابت علمی به خودش پیدا بکنه نمیتونیم مفاهیم دینی و از ضعابت علمی خالش بکنیم چرا یک تلسمات بشه همون بحثی میشه که دین یعنی جادوگری و الله از زوابط علمی تاریخی ما خواهش میکنیم و نکته مهم اینه که ما اصلا اثبات کردیم مهمترین خالی که در دنیای اسلام راجع به اصناد بوده بهترین قسمتهایش اهل بکردن ما در این بحث صحیح و تعریف صحیح که باید شدوز نباشه یه توضیح از تر میبین خب این دارن که باید خالی از شدوز باشه مروم علامه خالی از شذوذ نایواد خود سنیان که این قید را از خودش روات که نداره حسین تعریفه صحیح حدیثی شیرازیه لعن و زابل عن مثل اعلام منطل اسناد من غیر شذوزه شاذ نباشه علامه گفت مایروی الحذر الامامی عن مثل اعلام منطل اسناد من غیر شذوزه علامه نایواد این توضیح بده اینا اصلا برگردوندن به مسلم در تقیه خودش قضیه کسی که و جلوس منکر گفته انکار جوشز. و ما ما اکثر موسل 260 ای صفاتش و این فرواث عمره نهزره است صفات و قاضی سان قبل از موسل که شوزو حدیث شاست صحیح نیست و رو سندش هم معتبر یعنی ما خیلی از مسائل در حقیقت اهل بیت املاری پایگذار بودن در درجه اول علی و بعد خب ما با اون تاریخ روشن رو به مثلا به ظلمات و کوچه های و راه تاریک و بعدش هم به دیوار بخوایی و دو مکتب به دیوار بذاریم خب میشه راه علمی پیدا کنیم میشه راه رو روشن بکنیم راه روشن رو بشید بشیم ابهامها رو برداریم تلایه حالا، من فکر میکنم یه مقداری نه اون جوری که مثل و اون مقداری که ایشان مثلا خلاصه ایشان خلاصه ایشان است. در دریای معارف اهل نمیخوره نمی‌خواد. وسیله دریای بسیار عمیقی با تناب دو میتری. با این تناب دو نمیشه نمی‌شه کاری کرد با تناب اعلام قدس الله خلاصه اعلامه نمیشه معارف اهل بیت و سنجش انصاف پیش بیاد. حالا نگاه خارج شد یالا باز این به بحث خودمون. بنابر این دکتر خونگی که مرموم و استاد رفتن که چون اسم این آغازه ده نجفی شنجی بود و روش این راه درست نیست. این راه, راه باثی و اون سه مطلب اشتهاره حالا اگه شما ما مثلا شهرت خیلی واضح نشه ما میکنی. گیر میکنیم که... می‌تونیم گیر دادن که یعنی کسی بولندش براش جلوش نیاد ولی کو سوال می‌کنی چرا این شخص یکیشی راستا اینو حالا مطلب حالا که گیر کردیم نفر گیر کردن که مشکل نداره دائم اینکه یانه مشت اشتباهه ما سعی کردیم خود اثرا بکنیم بین که این مصادره اختیار ما هست. در بخواد کاشفیت به کاشیپیت دل آزاد داشته شود نداریم. وقت مصرف نکن کارایی دیگه داریم. به بکارم دیگه میکنیم تنها تا بر سیم می‌ریم. نه تنها از بحث لذی خارج میشیم و حکم میگیم. ما چون راه رو معین کردیم صبر کن. ممکن است یک ما و بحث لذی به جوی نرسیم. اون وقت یه هوک ما مجموعه قراره در این بهتر از اینست که جنبه های تنبود آخرشان نرسیم خب اصول عملیه و مثلا که برای اون جنب هست دادی از اون ذوابط علمی اولا ما میتونیم من صحبت کنیم و ذوابط علمی رو تا حدود 90 درصد و آقلالی فیلی درصد 90 درصد و آقلالیش معیم مقید رو کنیم یک این که ما اگر در یک روایتی ابحام سندی بود این رو به خاطر کلام نجاشی گفت کنان, کنان در اون کتاب حل بکنیم این را اصلا درست نیست چون نجاشی ناظر بروایت نیست و اصلا ناظر بروایت نیست یه خواهی نخواهی بیان شغرت نمیتونه بکنه نجاشی از کردم اون چیزی که در مقابلش شده فحارف اصحاب و اجازه خوب دقیق بکنه نجاشی که به حستش نوشته اون چی که در مقابل شوده فهارس اصحاب و اجازات همزم کرده این کرارن و نرارن احتمالا فرقه به این دوتا حالا این احتمال سی من بکن اجازات چیزی باشه که شخصی کتاب به شخص ما یعنی طرقشو بگه بگه های فلاندیفت اجازه دادن این کتاب های نرد بکن اسمش اجازه دادی فهارس شبیه تعلیفه کسی کتاب میدونیسیم من دو تا کتاب دارم این کتاب سریدشینه این کتاب این میشه فهارس فرق بین این دو تا فهارس. این این و اجازه دیره این دو تا. آیا با دیگری مثلا فرشته ابن ندیم من باب مثال میگه فلان فلان داره کتابه چون فرس ندیم که فهرستش اصلا زیادی بوده که تون اجازش یا شیخ نیست اینا انجام دادن حیاه فرس اینو ساخت رو شده رساله توسط دستی که نداشتش شیخ هر اطراز رو نه در بخش پواه های الان نفسی این و لذان همه مشکل داره برای از علمان فیلی رو بزنی کنا من قدیم اون حالت خاص خود داره ما اگر فهمیدیم آقای احمد نیهیاد داره کتابیه باید نصال با هم شیخ علمدین نشه اما ما این احوال النیریارو به قرائت کتاب مثلا کافی ببینیم کافی گفت مثلا فاز علی نروان احمد النیری این هم احمد النیری صاحب کتاب میشین ما یک فهد جز می‌شین میشین احمد النیری صاحب کتابم اثر بولی الکلینی عن علی النیری ان خویشین قالو كده میشین قرائت خویشین ده که چی تو های یک راشین احمد النیری صاحب کتاب ده از یک तरह سو اجازه به قوارز یک دال روایت کدی رو میبینی یک اشارهش میکنه اینو به عنوان اجازه عربی شیده و لذا این اصطلاح رو ما به کارش نمین در کلمات عربی معاصر ما نیست با این اصطلاح رو به کار بودیم ما یک افسانه داریم یک اجازات داریم افسانه هرچندمون داری روایات داریم. در کاوی میگه علی بن ربان گفت این افسانه اجازه اینو میگه که قوارز سؤال اینه اگر یه آقای رو بختم ایشون کتاب داره که در تحسه شیخ و اسمش اسمشن نمازه اما اسناد داره خوب دقیق بکنید یه در کتاب کافی اسناد داره میتونید ما اسناد رو تبدیل به اجازه بکنید این خیلی مونه ما تو متاسفانه ظاهرن عده به این مطلب دید خیلی باطل هم از را این یه نوع تدریسه به اصلاد و شخص را تبدیل به اجازه بکنه مثالی شما من باز اون عرض کردم فرض احمد بن نهایی نه در جوشی است تو خارجش نزن احمد بن نه در جوشی هست نه در شیخ هست بلکه در سلسله ندیم هست که احمد بن از علمای شیعه و کتاب چون ترست ندیم سند نداره فرض ندیم شون وراغ بوده به صدر موزیما انتشاراتی بوده اون کتاب که مثلا هشتی که توضیح میکرده اسماشون چونیشون حسنان که از انتشارات فهرستشون چاکنونتن فهرست انتشار که ای این فهرست انتشار به خودش دارد ازایت کتاب ابن ندیم چیز نداره، سند اجازه نداره، بدون اجازه رو بدون اسمان یا حاله آیا میشه ما این کار رو Come on. Right.